مجده دل که دیگر باد سبا باز آمد خوش خبر از طرف سبا باز آمد برکش ای مرغ سهر نغمه داودی باز که سلیمان گل از باد هوا باز آمد آرفی کو که کند فهم زبان سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد مردمی کرد و کرم لطف خدا داد به من کان بطه ماه رخ از راه وفا باز آمد لاله بوی مه نوشین بشنید از دم صبح داغ دل بود به امید دوا باز آمد چشم من در ره این غافله راه بماند تا به گوش دلم آواز در آب آمد گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست لطف او که به لطف از در ما باز آمد